از وقتی مسئله ای مطرح شده است بحانه دشمنی ها مسئله ای است یک روز این بحان است یک روز حقوق بشر بحان است یک روز فلون مسئله داخلی بحان است اما همه اینا بهانه است مسئله اصلی چیست؟ تا ده ها سال دیگر دنیا محتاج نفت و گاز استکبار و قدرت های استکباری می‌دانند که رگ حیاتشون به نفت و گاز وابسته است اون روز که نتوانند این نفت ارزان رو به دست بیارند اون روز که مجبور باشند برای تهیه نفت و گاز امتیاز بدن و از زورگویی دست بردارند اون روز برای آنها مصیبتباره. مسئله اصلی، مسئله حراست مقتدرانه نظام اسلامی از ثروت عظیم نفت و گاز در این کشوره مسئله مسئله سلاح هسته ای یا صنعت هسته ای نیست مسئله حقوق بشر نیست مسئله جمهوری اسلامی است که مثل شیر در مقابل اینها ایستاد است من از هستم مدیر عامل شرکت مناطق نفخیز جنوب با توجه به اینکه 50 سال آینده نفت تمام میشه در کل دنیا منحصرن ایران عراق و عربستان بعد از 50 سال نفت خواهند داشت 70 سال دیگه هم گاز تمام میشه در کل دنیا اون موقع فقط ایران و روسیه هستند که حرف برای گفتن دارن و بوزم گاز دارن در نتیجه نگاه و روی کرده ما برای برنامه ریزی با اوعاده باید غنی باشه که بدونیم برنامه ریزی از همین الان داشته باشیم که چگونه از نفتمان استفاده کنیم که تداوم داشته باشیم ملظ فرمودید که مقام آزماعایی هایت اویل سال در فروردین ما تشری بردن اصل این در واقع نگاه آینده به گاز هست موسا سوری هستم مدیر آمل شکید نفت و گاز پارس و رئیس سید مدیری سازمان منطقه ایجا اقتصادی انرژی پارس اولا مرودن یکی از واام اختراع و پیشرفت و افتکار نیاز و فشاره ما نادم بیشتر احسش میکنیم و یا ما هرچه دشمن فشار رو بیشتر میکنه خدا لطف خدا قطعاً بیشتر میشه و از اون خلاقیت و نوآوری به شدت جهشی حرکت میکنه. اقلا می تولید داخل شدن و گاه ما در تکمیل چه ها و بعضی جه ها رو همی تولید داخل کردن و تکنولوژی را ارتقا دادیم که برا خود سازنده اصلی محله شگفتیم حضور آقا در اول سال و آخر سال در واقع مثل بنزین سوپره که به ما قدرت خیلی زیاد میده ما شجاعت و چسارت میده خب ما سال جهاد اقتصادی رو که سال نوت هست با حضور در یک مجموعه مربوط به شما. آغاز کردیم حالا هم که آخر سال جهاد اقتصادی است باز داریم سال رو با حضور در یک مجموعه مربوط به شما تمام می یعنی در واقع شما اول و آخر سال جهاد اقتصادی رو اقتصادی رو اختصاص به خودتون دادید ما هم در واقع با قدرت خیلی بالا با برنامه ریزی خیلی بالا تونستیم مثلا تو منادق نافق جنوب برای اولین بار توربین سولار سنتار رو که آمریکایی بود مسئول آمریکا بود اینو ما تو ایران درست کردیم ما الان در هفاوری چه دوازده ده به بشین هفاوری و تکمیل چاه کاری کردن این فناوری الان در سطح دنیا هنوز ارائه نشده کار بردی نشده. بری اتفاق تو سرنفن امتا ایران افتاده پاکسرشت هستم مدیر پجویش و فناوری شرکت ملی گازیران حالا اشگاه در واقع قلب فرایند تصفیه گاز طبیعی دیگه توی ده بیس سال گذشته توانمندی روی ساخت برقی از قطعاتش بوده مم. اما اون چیزی که اهمیت داره اینی که ما بتونیم خودمون با علم خودمون اون رو طراحی کنیم. طراحی پالایشگاه و همون در حقیقت لیسانس پالایشگاه ها رو یک برنامه پنج سال پیش شروع کردیم با پژوهشگاه و های علمی دانشگاهیمون که انشالله بتونیم طراحی پالایشگاه که شامل بخش های شیرین سازی، نمزدایی، بخش های مایعات گازیش و گوگلد زدایش باشه تماما توسط لایسنس داخلی انجام بشه. آقا جالبی گفتن برای من. آیم اشاره کردند که دو تا سه سال این طراحیش دور میکشه و دو تا سه سالم زمان ساختشه بعد آقا فرمودن که چند سال از حالا گفتن پنج تا شش سال دیگر من قول میدم آقای از اوجی مدیران شرکت آقا فرمودن که بس. من بینم در چهره این آقایون که زودترم میتونن اشتالا انجام بنابراین مجموعه تحریم در کوتاه مدت گاه زمان رو افزایش میده دستیابی به کالا به فناوری و گاه خزینه و گاه هر دو اما در میان مدت و بلند مدت قطعاً این زد خودش تبدیل میشه زد تحریم کننده و به نفع ما که تحریم شدیم با تبدیل فرصت به فرصت برای شکوفایی نوامبر ان شاء الله استقلال علمی و فناوری کشور باید تبدیل کنیم نفت رو به یک نقطه قوت اگر از ما خریدن سود ببریم اگر نقلیدنم سود ببره. کشور در همه شوق در همه صورت از داشتن این نفس سود ببره، باید این حالت به وجود بیاد. خب، این انشانله خواهد شد، یعنی اونجوری که امروز انسان نگاه میکنه سیاست گذاری ها و برنامهریزیها ها و اجراهایی که در سطح کشور وجود داره از طرف مسئولین این کشمنداز رو برای ما روشن میکنه که انشالله در آینده همین جور خواهد شد. زبدگان و نخبگان ملتی ایران نخواهند بذاشت نه یک وسیله باشه که همینطور به آسانی از دست بره چیزی که جایموزین هم نداره این کشور انشالله اولگوی خواهد شد برای بقیه کشورهای این منطقه که اودهی رفت دنیا رو هم اینا دارد. اگر میگیرد در شینه حرف من بی افکن کوله بار راز را بر دوش سلام بردباری های خود را باز محکم بند هزارن هزارن به دنبال هزاران در هزاران راه رو می بیا در آتش اندازیم با هم خیمه دشمن بیا در آتش اندازیم با هم خیمه دشمن